الله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و الله که به لطف و عنایت الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید ما در خدمت شما بودیم کلام رو تقسیم کردیم به کلام خبری و گفتیم که کلام خبری یعنی الخبر ما یهتم را از صدق اول کذب و لذاته. اونیه که احتمال صدق و کذب داره بدون این که در نظر بگیریم کی گفته به خاطر ذات خبر که در نظر بگیری محتمل صدق است یعنی مطابقت با واقع و خارج یا محتمل کذب است یعنی عدم مطابقت با واقع و خارج بعد وارد مواحص کلام شدیم کلام خبری و تمام شد. و کلام انشایی رو تعریف کردیم به این که مالا یحتملو از صدق اقل کسب و لذاته یعنی اونی که احتمال صدق و کذب لذاته نداره حالا چجور میشه که احتمال صدق و نداره یعنی واقع بخواد. رج نداره یعنی با کلام من ایجاد میشه انشا اصلا انشا یعنی اوجد ایجاد کرد پس انشا با تلفظ من ایجاد میشه چیزی نیستش که با اون مطابقت بکند بشه صدق یا مطابقت نکند بشه کذب بلکه با صحبت من ایجاد میشه با تلفظ من کلام من ایجاد میشه این را بهش میگن کلام انشایی پس این کلام انشایی اونیه که مالا لا رو از صدق اول کز و لذاته بعد گفتیم این کلام انشایی به دو دسته تقسیم میشه یکیش میشه انشای طلبی یکیش میشه انشای غیر طلبی انشاع طلبی اونیه که با تلفظ من که ایجاد میشه توش طلب هست مثل امر من وقتی به یکی گفتم اکتوب تا نگفتم اکتوب طلب کتابتی نشد گفتم اکتوب طلب کتابت شد یعنی کتابت رو خواستم خب امره طلب کتابت رو از تلفظ من ایجاد شد تا قبل از این که من بگم طلب کتابتی نبود گفتم طلب کتابت شد پس این با تلفظ من ایجاد شد اما خب این اکتوب توش طلب هم هست یعنی من یه چیزی خواستم یه چیزی خواستم اینه بهش میگن انشاء طلبی که امر هست و نهی هست و استفهام هست و تمنی هست و ندا این پنجتا اصول انشاء طلبی است که توشون طلب هست امر طلب فعل نه طلب ترک فعل استفهام طلب فهمه تمنی طلب امر محال یا مستبعده نرا طلب اقبال مناداست یعنی ما میگیم وقتی یازد طلب میکنیم که اون بله بگه برگرده بگه بله اینها طلب دارند توشون تا نگفتی نیستن گفتی ایجاد میشن و توشون طلب هست یه انشایی هم داریم غیر طلبیه انشای غیر طلبی زیاده مثل مثلا فرض کنید سیغه نظر مثل سیغه عقد درست شد مثل فرض بفرمایید سیغه تعجب مد و زم تا شما نگفتید ما احسن از زیدم چقدر زید زیباست تعجب نکردید اظهار تعجب گفتی اظهار تعجب کردی اظهار تعجب شد با تلفظ تو توش طلبم نیست تا نگفتی نعمر رجل و زیدان زیدی نشده گفتی نعمر رجل و زیدان مد کردی مده ایجاد شد توش طلب هم نیست همینطور سیغه نظر که بگی مثلا نظر طول فلان یا سیغه عقد حالا عقد معامله باشه اینو فروختم اینو خریدم یا عقد نگاه باشه تو. و زوجت وقتی میگه درسته سیغه ماضیه ولی با ما همین تلفظ داره ایجاد عقد میشه حالا اون عقد دو جوره یه موقع هستش که عقد میگیم یعنی دو طرف است یه طرف میگه میگه به تو فروختم درست شد یه طرفم میگه قبل تو خریدم. این میگه انکهتو تو اون میگه قبل تو هر دو انشیه یعنی در زمان با گفتن ایجاد میشه. توش هم طلب نیست. یه موقع ایقاع، عقد و ایقا، ایقا اونم انشاهه اما یه طرف هست مثل یه نفر مندش رو آزاد میکن خب میگه انتا هرنون لبچه اللا. دیگه اون قبل تو نداره همین که گفت انتا هرنون لبچه اون از اون لحظه آزاد میشه پس بنابر این سیغه انشاه غیر طلبی توش طلب نیست ولی انشاهه با تلفظ ما ایجاد میشه اینها تعدادش زیاده ولی اینها رو ما توی بلاغت ازش بحث نمیکنیم همینقدر که الان من گفتم هم زیاده. چرا از اینها بحث نمیکنیم؟ چون اینها همون معانی و مفاهیم و بلاغتی رو به دنبال خودشون دارن که شما تو نحو خوردید. یعنی تعجب معلومه چیه؟ انشاء مزم معلومه چیه؟ اینها همه چیزشون مشخصه نیاز به قول خودمون به؟ تعمق نسبت به دریافت معانی اون نیست. لذا همین مقدار که تو نحو لغت بیان میشه بسه اما اون انشاء طلبی نه. اونجا امر یه دونه صیغه است، یه اکتبر شما میگی. یه معنای حقیقی داره، 20 تا معنای مجازی ممکنه داشته باشه که با قرینه فهمیده میشه لذا اونا رو بحث میکنیم. چون شما بفهمید که معانی مجازی کلام چیه اونجاها چون نکته هست در امور حقیقی و مجازیش و مباحث متعدد وجود داره که با قرینه فهمیده میشه لذا اونها بحث میشه ازشون این غیر طلبی همینقدر بسته چرا چون معانی غیر از این معانی که شما در مورد تعجب در مورد متوزم و اینها در نحو خوندین چیز دیگری مازاد ندارد درس رو گفته. دیگه بعد از این باید مثال بزنیم حالا نگاه کنید قواعد درسو ال الانشا که ما تعریف کردیم مالا یحتملو الصدق او اولکز و لذاته مالا یحتملو از صدق اولکز و لذاته انشا نوعان دو نوه تلبی و غیر و انشاء طلبی است غیر طلبی طلبی چیه صد طلبی مایستد این مطلوبند اونیه که اقتضا میکنه مطلوبی رو میطلبت مطلوبی رو یه چیزی رو میخواد وقتی اکتوب طلب کتابت میکنه مطلوبی رو میخواد غیر وقت طلب برای اینکه این امر این نهی حقیقی باشه این طلب حقیقی باشه شرطش اینه که موقعی که شما طلب میکنی حاصل نباشه آه؟ موقعی که شما طلب میکنی حاصل نباشه اگر حاصل باشه حقیقی نیست مثلا شما تو نماز میگی، اهدنا از المستقیم اهدنا اهده فیل دیگه یعنی خدای هدایت کن ما خب خدایا هدایت کن ما رو مکتو هدایت نشودی. تو که اومدیم بایستدی داری نماز میخونی، تو که همه چی قبول کردی، پس این اهده درست شد مطلوبش وقت طلب حاصله پس این برای چیه؟ به قرینه میگیم. میگیم این برای دوامه یعنی خدایا هدایت به صراط مستقیم رو که ما داریم از ما نگیر نزار ما خدای نکرده منحرف بشیم خدایا هدایت ما رو بر ما استوار کن معنا این میشه پس ببین یه چیز دیگه شد هدایت کن نیست مثلا خود قرآن میگه یا ایوهاللزین آمنو آمنو یا ایوهاللزین آمنو آمنو آهای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید مگه میشه میگن تحصیل حاصل محاله با چیزی که هست ایمان آورده دیگه ایمان آوردن یعنی چی؟ ها این آمنوی دوم معناش اینه که سر ایمانتون وای یعنی آهای منین سر ایمان خودتون سفایی سید ایمانتون شل نشه ها پس ببینید اگر ما اینجا داریم میگیم مطلوبش غیر حاصل باشه وقت طلب ما اون حقیقیه رو تعریف میکنیم دیگه انشاء طلبی حقیقی اونیه که مطلوبی توشه و مطلوبش هم هنگام طلب حاصل نیست داشته نه؟ استفهام اگر من از شما یه چیزی رو سوال کنم و نمیدونم نیترسم مثلا فرض کنید که این خیامون آقا اسمش چیه خبی استفهام حقیقی مطلوبی داره طلب فهم دارم میکنم و وقت طلب هم حاصل نیست برای نمیشن سمیش استفهام حقیقی. اما اگر من به عنوان یه استاد از شاگرد سوالی دارم میکنم این سوال برای طلب فهم نیست که ها برای امتحان کردنه پس این امر دیگه بگید استفهام حقیقی نیست حالا موارد متعدد رو خواهیم خون پس مایستد این مطلوبن غیره ها سلن الطلب طلب و یکونو بلعمره و نهیه و استفهامه و تمنی و ندا این پنجتا آیا فقط طلبی ها همین پنجتاست؟ نه عرض و تهزیزم هست عرض طلب به نرمیه مثل میگم علا تنزل بنا آیا نمیای پیش ما علا تنزل و بنا یا علا تکتب و اسمی آیا اسم من نمی نویسی؟ یعنی خواهش میکنم بنویسی این همه اکتب اسمیه انزل بناست اما توش خواهش هست نرمی هست تحضیص چیه؟ طلبه به تندیه با لولا لوما حلا لولا تنزلو بنا چرا نمیای آکه شما لولا تکتب و اسمی چرا اسممو نمی این همو همه اکتب اسمیه انزل بناست اما با تندی تشر. اینا هم هست ولی اینا رو دیگه ما اینجا بحث نمی کنیم چرا؟ چون اینا همینقدر که تو نه گفتن گفتن بسه همینقدر دیگه میگن عرض علعرض طلبون به و از تحزیز به عنفن تمام شد نگاه کنید پس بنابراین ما اینجا عبارت خودمون رو آوردیم تو اینکه اینها انشاهای طلبی هستن بحث از جلسه بعد امرو یه بار نهیده بار استفهام تمنی ندا بحث میکنیم غیر طلبی کدومه مالای استد این مطلوبه توش طلب نیست مطلوبی نمیخواد با تلفظش ایجاد میشه ولی مطلوبی توش نیست و لهو سیغون کسیرتون سیغای متعددی داره منهایش توش، تعجب سیغه تعجب هر تعجبی تا شما انشاء نکردید نگفتید ما احسن زیدن احسن به زیدن تعجبی نیست گفتی تعجب شد. والمد و زم نعمه و بحثه و امثال اینا و قسم تا نگفتی والله قسمی نخوردی گفتی والله قسم خوردی لذا اگر انجام ندی کفاره قسم داری و افعال و افعال غلطه عدوات عدوات و رجاع. چون ما فعل رجا یه دونه داریم دیگه اصا عدوات رجا لعلم هست پروف مشبهتون داریم باید بگه عدوات رجا درست شد؟ عدوات رجا و عدوات رجا و کذا سیا قول اغود ولی ایقاعات و نظر سیغه اقود و ایقاعات و نظر درست شد؟ این هم جزء موارد انشاء غیر طلبیه که ما موارد متعددش رو با هم گفتیم شما دیدید حالا نگاه کنید نگاه کنید حاشیه یک همینجا نگاه کنید آیا ما انشاء و خبر رو به تعریفش میشناسیم یا به لفظش یعنی مثلا یه دونه جمله دیدیم زید قائمون چون جمله اسمیه زید مبتدا قائم خبر میگیم این جمله خبره یه یهجام مثلا فرض کنید یه فعل امر دیدیم بگیم این انا ما کاری به لفظ نداریم ما تعریف کردیم درست شد گفتیم خبر اونیه که احتمال صدق و داره لذاته انشا هم اونیه که احتمال صدق و نداره لذاته به دو دسته تقسیم میشه یا توش طلب هست میشه انشاع طلبی یا توش طلب نیست میشه انشاء غیر طلبی پس گاهی اوقات این مطلب ماست چون ما با تعریف میشناسیم گاهی اوقات میشه گاهی اوقات میشه ها؟ که کلامی ظاهرش خبره اما باطنش انشاست به قصد انشا گفته شده این به خاطر مبالغ است، نکته بلاغیش مبالغ است درست یه نفر مثلا فرض کنید میخواد بره به یه نفری توهین کنه شما نه نرو. نرو نه. یه باش نرو نهیش میکن نرو نرو نهی یه موقع میگی نمیری نمیری این نمیری یعنی نرو آه؟ نمیری یعنی نرو ولی تحکیلش چیه بیشتر یه موقع یه کسی رو دعوت میکنید میگید بیا خب این امر یه موقع میگه میهای اینم یعنی بیا یعنی تاکیدش بیشتر یعنی من میدونم تو امر منو قبول کردی میای خودت درست شده نه پس بنابراین گاهی اوقات هستش که جمله ظاهرش خبره اما باطنش انشاست ما انشا حسابش میکنیم خبر حساب نمی کنیم به خاطر نکته بلاغیه قد برزر فعل مزاره یعنی گاهیه قد تکونا الجملت و خبری فی لفظ گاهی اوقات یه جمله در ظاهر خبریه است وحیه انشائیتون فی معنا اما احتمال صدق و کذب ندارد لذاته انشائیست در معنا. حالا ما لفظش رو حساب کنیم یا معناش رو میگیم معنا ما انشاء و اخبار رو به معنا میشناختیم و الازالکت و عد و فیبابل انشا و بر همین اساس تو باب انشاء حسابش میکنه که قول المتنبی و سیف و مثل قول متنبی که مرد خطاب قرار داده سیفت دولت الان ببیر میمیدن مثل چی میمونه مثل اینکه که میگیم رحمه الله علیه السلام این رحمه الله علیه السلام میگیم قال فلانون رحمه الله این رحمه الله بندازه تولولی آزمایش یعنی اللهم ارحمه این شایه. یعنی خدا رحمتش کناده ولی ظاهرش اینه که جمله فعلیه ماضی درست شده نه؟ مثل که بگه که دعا الله. سلمکم الله و می سلمکم الله یعنی اللهم سلم علیه درست شده نه؟ میگه مثل قول متنبی گفته فدا لکر من یقصر و انفداک گفته فدای تو شود هر کسی که کوتاهی کند از فدا شدن در راه تو. یعنی فدات بشهر که دلش نخواد یعنی خدایا این رو فدای این کن این شاست دعاست یعنی فدای تو شود تا اینو نگفته انشای دعا برای فدا شدن دیگری برای این نشده گفت دعا شد این فلا فدالکه بله ماضیه و که هی گد اول سیف دولت به شفا مثل قول که دعا میکرده برای سیف دولت به شفا که شفا پیدا کنه من علت اصابت خود شفا پیدا کنه از یه بیماری که به او اصابت کرده میگه شفا کل لزی یو بجود که خلقه شفا کل شفا دهاد ترا یعنی خدای شفاش بده شفا دهاد ترا کسی که یعنی خدایی که شفا داده میشود با جود تو خلق او، یعنی با جود تو خلقه او شفا پیدا میکنن لاستوریست میشن اون کسی که جود تو خلق او رو شفا می دهد تو را شفا دهد یعنی خدای شفا خوب خب فهمیدیم اینو منم چندی مثال دیگر زدم از مواردی که با قول خودمون ظاهرش خبر بود اما باطنش انشاء نگاه کنید به دیگه متن متن دیگه چیزی نداره که آه. چند تا مثال بره نهتا تا دهتا تا 10 ده تا پنج تاش یک قسمه پنج تاش یک قسمه شما میدهد چرا پنج تای اول چیه؟ انشای تلاویز پنج تای دوم انشایه؟ بگیر داید تلاویز آه. نگاه کن این کلام هم از امیر المومنین نفس شده هم از امام حسن مجتبه حالا ایشون نگفته که ولی. و بسیار زیباست میگه اهب بل غیرکه یک اهب بله غیرکه ما توهب بل نفسک اهب بل غیرک یعنی دوست بدار برای غیر خودت آنچه را ما مفهومی دارد بس. آنچه را که دوست می‌داری برای خودت، برای دیگری بپسند، آنچه که برای خود می‌پسندی، خودت بذار جاییون. اینو می‌گن اصطلاحاً انصاف, میان انصاف باش. یعنی انصاف داشته ور، یعنی خودت بذار طرف جای طرف مقابل یا طرف مقابل بذار جای خودت. نصف ک. این جمله یعنی انصاف داشته احب ولی غیره که ما تو احب بله نفسه که احبه است احب و یوهب و احبابن که احب هم می خب این کلام حدیث بود گفتم در نحجب هم هست. از امام حسن هم نحجب اما دومی رو از خود امام حسن نام آورد. اون اولی مال امیر المومنینه تو نهجور بل هست حتی اگر از امام حسن هم نقل شده در واقع کلام پدرش رویشون نقل کرده علیه السلام دو خب این مال امر بود احبه دو من کلام علی حسن رضی اللہ از کلام امام حسن علیه آلاف و تهیت و سلم عجیبه نگاه کنید در مورد امام حسن چی میگه این پایین ترجمه این که براش نوشته خبه سبت و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون نوه رسول خداست اون درست کان سیدن حلیمن آدم سالار سید آقای حلیمی بوده سبور از اون تومت است یک رحول فتنه بستیم بعدش می از آشوب و فتنه ها و جنگ و جزار از اینا بعدش می حتی انه نهو نزلل معاویه تحن الخلافت این از جنگ و دعوا می میامده که میگه فرود اومد کنار کشید به نفع معاویه از خلافت چرا حببن فی جمع الکلمته این حببن به جهت اینکه علاقه داشت مردم اختلاف نداشته باشن فی جمع الکلمته و تحکل قتال و جنگ و دعوا بری کنار بین المسلم دروغ محض غلط بلکه معاویه بعد اومد خلیفه هم شد مردم باهاش باش بیعت کردن نزدیک بیش از شیش ماه هم امام خلیفه بود اینقدر معاویه پول فرستاد و سران لشگر رو خرید و حتی توطعه ترور ایشون رو گذاشت جوری که دیگه کسی نبود ایشون هم برای اینکه معاویه رو تحت فشار قرار بده و دستش رو رو کنه که کرد و به که معاویه اهل معامله نیست و اصلا نیست اون صلح رو کرد و اون صلح نامه رو چون هیچ راهی غیر از این نداشت ولی امام حسن امام حسین هیچ فرق نشد امام حسن و امام حسن هر دو در لشکر اسلام بودند هر دو در زمان حتی خلافت خلیفه ثانی در بعضی از لشکر کشد در زمانی که عثمان داشت کشته میشد و شورش کرده بودند اینها دفاع میکردند و جزء سران و پهلوانان و شجاعان عرب بوده امام حسین که این حرفا بوده در جنگهایی که امیرالمومنین کرد یکی از فرماندهان و بزرگان این لشکر امام حسن بوده این هر چیه که انگار مثلا فرض کن نشون میدن که انگار مثلا امام حسن یه آدم خیلی خیلی ساده و دور از اینا و یه مثلا تصویح علیه عزبالله به دست داشته و سرش پایین و هیچ کار بکارش که نشته مثلا امام حسن یه آدمی جوشی و خروشی و اینطور. این در واقع توته است که نسبت به هیچ فرقی نداشته بعد هم تازه امام اگر این طور آدم بود که بعد از اینکه صلح کرد دیگه معاویه واسه چی؟ به ترسی که بیاد رو ترور کنه رو به شهادت بریسون میگه توبا فیسند تس ان و عربین سال چلون هم میگه توبا فیه در صورت که استو شده حالا بگذاریم از این حال امام حسن علیه السلام میفرماید لا تطلب نهیه لا تطلب من الجزا از پاداش پاداش خودت یعنی من جزائک از پاداش خود طلب نکن الا به قدر ما سنعتن مگر به اندازه اون کاری که کردی زیاده خواه نباشی خب بعضی هستن که به اندازه یه تومن کار میکنن به اندازه ده تومن مدعی مازدن میگه بله برای خدا اگه کار کردی و خدا هم پذیرو خود خدا هم میگه من ده برابر میدم ولی توی مسائل زندگی خودت همیشه اندازه مزدی رو که زیاده طلب نباش سرر میکنی یا مجبور میشی دزدی کنی لا تطلب منال جزا الا به قدر ما سنبت یعنی به قدر سن اک به قدر کار کردنت و همون اندازه که زحمت کشیدی مزد بخواه نه قال تیب عبود طیب در خصوص استفهام اینطوری میگه علا یعنی علا حرف تنبیه یعنی آهای عباستون جمع باشه الا مال سیف دولت الیومه آتبا یه روزی از در کاخ وارد شده دیده سیف و دوله خیلی مگسیه عصبانیه گفته علا مال سیف دولته استفهامه یعنی ایوش این لسیف دولته چی شده سیف دلار رو آتبن در حالی که اتاب میکنه به این و اون دل خوره چی شده سیف دوله رو که دل خوره در حالی که دل خوره این علامت سوال اینجاست بعد از آتبن یعنی سیف دولت چه شده که اینقدر خلق خوش تنگ مگسیه بعد این جمله الان فداه الورا انشاست اما از نوع دومه انشاه بگید غیر طلبی میگه فداه الورا الورا یعنی الناس فداه الورا فدای او باد همه این مردم امز از مزار با منظورم این کسیه که امزا یعنی اقطر منظورم اینه که قاطع ترین شمشیرها در زدن بریدن این قاطع ترین شمشیرها در برش که سیف الدوله است فدای او همه مردمان خب این جمله دعاییه دیگه مثل رحم الله تو این مثال این مال قسم دوم میتونه باشه ولی این مال شاید مثال اینجای ما نیست شاید مثال ما سرین استفانه مال سیف الدوله ده. ما یعنی ایوشه این یعنی استفان چه شده سیف الدوله رو چیست برای سیف الدوله در حالی که دل خوره یعنی چه شده؟ اوضاع چرا اینجوریه. خب. پایین نگاه کنه واشیه دو میگه امزا اسم تفضیلن به معنا عقت است که من گفتم اسم تفسیل و و هو الان علالمح یعنی و این منسوبه به مدح یعنی عمد از سویو امدهو انده امزا و امزا مفعول امدهوی مقدره امز یعنی ام دهو از سویوف. مت میکنم قاطعه ترین شمشیرها را از جهت برش مزارب جمع مزرب زدن هاش و هو منصوب و نلن و مزارب و سوی و تیغه هاش حد یعنی تیغه از جهت تیغه برش مزربهایی که میزنه آن زربه هاش این بالاترین و جملت و فداهولورا و مایت تسلوبه ها دعا این جمله فداهولورا جمله دعایی انشای غیر طلب یعنی انشاست باز حالا ما میکنون غیر طلبی غیر طلبی هم حساب نمیشه چون دعا باز این نوع امره. یعنی اللهم افته فدا کن منی این منظور اینه که میبریمش که اون قسم جز مجازی ها. شاهد ما رو این الا مال سیف الدوله این فداه الورا برمیگرده تو این تیکه ای که تو اون حاشیه که خوندیم قد تکون و, اللفظ و, و, و, و تو فی تالف و هو انشائيه فی المعنا و الا ذالک تو حد فی باب الانشاء که قول المتنبی خطابو ازدد دولت فدا لك من یقصر عن فداک و جواب دید اول سیف به شفا من علته‌ای عزابت و شفا که لذی یشفاء بجوده که خلق. این اونه. چهار این تلفظ من که گفتم که میره تو انشای غیر طلبی یعنی منظور طلبی اینجا نیست ولی اینم طلبیه یعنی اشتباه نشه که مو... یعنی جزء مواردی نیست که ما میخوایم الان بحثش رو بکنیم از مواردی که ظاهرش خبریه اما باطنش انشاه و جز موارد انشا حساب میشه و این فدا در واقع امره اما به شکل بگید جمله خبری آمده مثل اون مواردی که دیدید نه گفتم مال اون منظورم مال اون حاشیه‌ای بود که بند چهار و قال حسان ابن ثابت حسان ابن ثابت در زمان پیامبر شاعر پیامبر شعر مخواهدن بسیار ترسوی بود جنگ ها شرکت نمیکرد و خیلی هم نه ولی خود زبان بررایی داشت و با شعر دفاع از رسول خدا می کرد اینجا بعد از بعد از خلیفه اول عبی و خلیفه دوم عمر خلیفه سوم حدود پونزده سال حاکم بود ولی بله خب چون خودش یک مقدار حالت اشرافی داشت و یه مدتی هم از اسلام و وفات رسول خدا گذشته بود مردم نسبت به حکومت عثمان ناراضی بودن بعد هم از مصر و مدینه و شهرهای دیگه را افتادن آمدن شورش شد و عثمان خلیفه کشته شد با اون که امیر هم خیلی دفاع کرد که این اتفاق نیفته ولی اتفاق افتاد بعدا تلهق و زبیر و آیشه در جنگ جمل و معاویه هم به طبع اینها در جنگ سفین اینها اومدند و مدعی شدند که توطئه کشتن عثمان به نقشه امیرالمومنین بوده که او خلیفوشه امیرالمومنین که شجاع اول آخر بود حتی در زمان ابوبکر هم مدعی خلافت به خاطر نیو آشو و مطلب بشه نمیشد چه رسد الان بعد هم حتی آمدن سراغش بعد از کشته شدن عثمان به زور و زحمت و با فشار مردم قبول کرد بعدهم امیرالمومنین شجاعی بود که زرهش پشت نداشت چون هیچوقت پشت به دشمن نمیکرد این کسی نیست که بخواد بیاد یه همچین کاری توطعه بکنه و خودش صد بار در نهج البلاغه میگه میگه من اصلا مدافع بودم من مخالف این کار بودم شما بهانه دارید درست میکنید که کنید کنی والله امیرالمومنین کسی نبود که یه کار رو بکنه بعد بگه من نبودم اصلا این تو خاندان هاشمی نبود مسلم ابن عقیل تو خونه هانی ابن اوروه وقتی عبیدالله رو دعوت کرد اگر مسلم اونجا از پس پرده بیرون می آمد و میزد عبیدالله زیاد رو میکشت هم واقعی کربلا هم ایجاد نمیشه ورق برد ولی این کار نکرد به نامردی و ترور اینها به خاصیت خودشون نمیرسن حالا اون مسلم که دیگه در مقابل امیر قابل قیاس نیست اما خب این آدم حسان ابن ثابت این شعر رو میگه وقتی بخواد تبلیغات سو بشه اینطور نمیشه دیگه میگه یا لیت شعری شعری یعنی علمی ای کاش علم من بود یا لیته یا یا به معنای علاست حرف تنبیه یعنی علا لیته آهای کاش که این ما بیشتر قبول داریم بعضی اینوات میگن یا حرف نداست مناداش افتاده یعنی یا قومه ای مردمان ای قوم من لیت شعری کاش دانش من بود یعنی یا لیته شعری موجوده و لیتت تیره تخبرنی و کاش این پرندگان آسمان به من خبر میدادند کاش مرغان آسمان برای من خبر می آوردند که چی کاش من میدونستم کاش مرغان آسمان به من خبر میدادند چی رو ایران ما کان بین علی و ابن عرفان که چه اتفاقی افتاده بین علی و ابن عفان یعنی عثمان ابن عفان عثمان که واقعه بین علی و عثمان چی بوده واقعا علی توته کرد و عثمان به کشتن رسید کشته شد یا نه دیگران این کار کرد نه اینکه این آدم به قول خودمون نمیدونسته میدونسته نه این که نمیشناخته و نمیشناخته خود این جملهش در واقع گاهی اوقات هستش که یکی رو بهش یه چیزی میچسبونی یه موقع میگی والا نمیدونم ما که نمیدونم با قول دکتر شریعتی سه تا نقطه میذاری خب سه تا نقطه خودش به اندازه سه هزار تو جمله کار میکنه اینم این کارو کرده حالا یا لیتر لیتر لیتر برای تمنیه یعنی کاش میدونستم کاش می تمنیست پنج نگاه کن قال عبود واقعی جناب آقای عبود متنبی گفته یا من یعوز و علینا ان نفارقه اینجا من به معنای الذین است چون خم هم برمیگرده به من چون من موصول مشترکه به معنای اللذی الزانه اللذینه التی التانه الاتی میاد یا من یعنی ای کسانی که یعذو علینا یعذو یعنی یسعبو عزیز است بر ما سخت است بر ما چی بر ما سخت است عن نفارغهم اینکه از اونها جدا بیشیم ای کسانی که دل کندن ما از اونها خیلی سخته ای محبوبان من که جدا شدن من از شما بسیار سخته چرا چرا چرا سخته این جمله دوم دلیلش بود استیناف بیانی دیگه گفتیم این جواب نداست در واقع ای کسانی که نه جواب نداست استیناف بیانی جواب نداست ای کسانی که سخت است بر ما جدا شدن از شما وجدان او لا کل شیئن بعدکم عدم بدونید وجدان او یعنی یافتن ما مثل از شده به فایر کل این هر چیزی رو بعدا بعدکم بعدا گم مطالبه هر چیزی رو ما بعد از شما یعنی بعد از بعد از از دست دادن شما هر چیزی رو تو عالم هست به ما بدن عدمون مساوی با عدم است مثل عدمه یعنی ای کسانی که سخت است ما از اونها جدا بشیم به دست بیاریم ما بیابیم ما بعد از از دست دادن شما همه چیز رو دنیارم به ما بدن ادمون یعنی که ادم مثل هیچ است یافتن ما همه چیز را بعد از از دست دادن شما مساوی با عدم است هیچ ارزشی بگید ندارد با این نگاه کنید اضافه اذا فارقناكم اگر ما از شما جدا شدیم و وجد ناکن لشه این و همه چیز رو یافتیم همه چی به ما دادن فوجدان هو و ادم و سوا به آوردن رو به دست نیاوردنش عین هم فایده نداره چرا؟ لَأَنَّهُ لا یغنی قِنَا أَكُمْ اهدون زیرا فایده شما رو هیچ کسی نداره ولا يَخْلُفُ وَكُمْ بدلون هیچ کسی هم پیش ما جانشین شما نمیشه حالا اگر این مطلب رو دیدید بحث رو بخونم چون نصف انشا انشاء طلبی رو خوندید البحث الامثلت و المتقدمت و جمیع و ها مثال های گذشته همش انشایی لعنه ها لا تحتمل و ولا و لذاته زیرا نه احتمال صد رو داره نه کزد داره لذاته و ازا تدبرت و اگر خوب دقت کنیم مثال ها رو جمیعها ها همه اونها وجد ها قسمه این همشون دو جوره و سلطا تا افتل اولا مثال های گروه یک که ما پنجداشو با هم خوندیم یوتلب و به ها حصول و شیعن طلب شده حصول چیزی که لم یکن حاصلن وقت طلب موقع طلب حاصل نبوده چیزی رو خواسته که موقع خواستن نبوده و لذالکه یوسنبل انشاء و فیه طلبی به خاطر همین به این انشاء میگن انشاء طلبی اون چیزی رو طلب کرد اما امثله و طایفت اما مثال گروه دوم فلا یطلب و به هاشیان. چیزی باش طلب نشده و لذالکه یوسنبل انشاء و فیه غیر طلبی به خاطر همین انشاء درش غیر طلبی نامیده میشه خب حالا توضیح میده تدبر عل انشاء فی امثلت الطائفه العلوی نگاه کن دقت کن به انشاء تلوی در مثال های گروه یک تجد و تارتن یکون بالعمر امر می‌بینی که این انشاء گاهی اوقات با امره کما فی المثال الامر. همونطور که تو مثال اول است و تارتن به نهی گاهی اوقات با نهیه کما فی المثال الثانی همونطور که تو گروه استفهام و تا به استفام. و گوی با استفهام کما فی مثال سالف که تو مثال صفر و تا به تمنی گوی با تمنی کما فی مثال رابع و تا به ندا کما فی مثال خامس با اوقات بالنداء طلب اقبال میکنه. همونطور که در مثال پنجم و وهذه یا انواع الانشاء الطلبي و این انواع انشاء طلبی علتی صنب هست و انها فی هاذال کتاب که ما ازش بحث میکنیم در این کتاب خب حالا اون پایین یه حاشیه ای داره من اینو گفتم که آیا انشاء طلبی فقط همین پنجتاست تا میگه نگاه کنیم و یکون الانشاء الطلبی ایضاً بل عرض یعنی طلب به نرمی و تهذیذ یعنی طلب به تندی. ول جمله دعاییه و جمله های دعایی مثل همین مثالی که خوندیم فدا الورا امز السیوف مزار با کنون اوقات با جمله دعاییه که ظاهرش خبره نه انشا طلبیه خب ولیکن نا اقتصر ناعلل انواه خبسته ولی ما اقتفاق میکنیم به همین انواع همسه پنجتا چرا الاختصاص ها به کسیر من علتهای فلولاغیه چون این اختصاص داره به خیلی از نکات بلاغیه اما این دیگه نکته بلاغیه مثلا از طلب به نرمیه اون دیگه همین بلد شدیم تحزیز طلب به تندیه این هم بلد شد. جمعه های دعایی هم اگر مثل فداهول ورا میاد و نگفته اللهم مفتهی ها به شکل رحمه الله میگیم اللهم ارحم نمیگیم، رحمه الله مبالقش بی بیشه. یعنی انگار خدا او رو رحمت کرده ما ما داریم ازش خبر میدیم همین نقطه ی بالا دیگه چیز دیگه نداره خب. پس بنابر این این 5 تا مورد بحثی که تو این کتاب بحث میکنیم حالا نگاه کنید به گروه دوم شد گروه دوم 5 تا مثال داره و این 5 تا در واقع انواع جملات انشائی غیر طلبی است یکی قال از سمت ابن عبدالله سمت ابن عبدالله میگه شاعر قزلون شاعر قزل سرا مقل بدویون شعر کم داره مقل بدویون بادیه نشینه و هون شعراء دولت الامویته از شاعران دوران اومویینه دولت اومویینه از شاعران اومویست و کان شریفن لاسکن آدم خوبیاند ناسک یعنی عابد بوده زاهد بوده عابد و زاهد و شریف بوده آدم خوی بود قال از زمت ابن عبدالله به نفسی تل ما اتیبر ربا و ما احسن المصطاف و المتربع به نفسی تل کل یا علا عرض و عطف بیان برای مشاهدهش. این تلکه مبتدای معخر به نفسی خبر مقدم این به متعلق به یه مفتیتون یعنی فدا شود فدا شود نفس من این سرزمین را یعنی این سرزمین فدا شده یه جان من است یعنی جانم فدای این سرزمین این الان به نفسی تلکه ها مثل به ابی و امی و مادرم فدای تو بود این جمله دعایی از همین یکی که الان خوندیم. انشاع طلبیه یعنی, یعنی جان هم این سریم. این شاید به سال ما نیست طلبیه اما از نوع بگید این جمله دعاییه که مثل اون فدا هوورا. شاهد ماثرین ما تی بر روا و ما احسن مستاف و متربه این دو تاست. ما تیبر و ما احسنا تعجببه. میگه جانم فدای این سرزمین باد انگار داره میگه چرا میگه ما عطیه بر روبا روبا جمع ربوست یعنی بلندی تپه ما عطیه بر روبا چه بلندی هایی چه ارتفاعاتی داره چقدر زیباست تیب است این ارتفاعاتش و ما احسن مستاف و مت مستاف جایی که تابستان میرفتن اسم مکان مت جاییه که بهار میرفند یعنی اعلاق و قشلاق چقدر زیباست علاق و قشلاق میگه چقدر طیب و پاک از این بلندی ها چه علاققی دارد چه زیبا و چه قشلاقی دارد خب پس اون رسمت به نفسی تلکل عرض شاید مثال انشاست اما از نوع انشایی که با جمله دعایی آمده درست شو؟ شاهد ما نیست اما این ما افیاب ارغوبا و ما احسن المصطاف و المتربعا شاهد مثال ماست که سیره تحجبی پایین نگاه کنیم ارغوبا الاماکنل آلیه سرزمین های بلند ول منزل القومه فه سیف ول متربه اسم مکان هنینه دیگه منزل هم فه یقول میگه شاعر اینطور میگه افدی به نفسی تلکل عرضه جانم رو فدای این سرزمین میکنم یعنی جانم فدای این سرزمین باد چرا لطیب رباها به خاطره تیه بودن ارتفاعاتش چون ارتفاعات خیلی خوبی داره و حسنها و زیبایی این ارتفاعات سیفن و در تابستان و بحر یعلاق و قشنان این معنای بیتر و قال جاهز من کتابن جاهز در خصوص کتابی چنین گفته اما بعد اما بعد یعنی اما بعد اله و سنا اما بعد از همد و الهی فن عمل بدیل و من از دلت علی اتظار. چه خوب است جانشین از لغزش عذرخواهی باشد مد کرده این که انسان عذرخواهی کنه و این رو جانشین لغزشش کن. آقا خطا کردی. اشتباه کردی. بی کردی. عذر بخوا عذر بخوای که میگه اگر اینجامون بیاد، باه چه خوب است. چه خوب است اوزر خواهی که بدیل از لغزش شود. و به بعسل اوز و اه اه چه بد است. ال اوز من التوبه علی چه بد است چقدر بده اصرار کردن بر خطا گناه عوض از توبه به جایی که توبه کنی به جایی که بگه آخه حالت دیگه نمی ای اصرار کنی این میگه احه از چه بد است؟ و اون احه از چه خوب است، به به چه خوب هست نعمه و بهسه جانشین نقزش اگر پوزش زود بهبد و عوض از توبه اگر اصرار بر خطا شود اه, اه چقدر بد است. پایین نگاه کنید. البدیل البدل و زل از سقط و فی الكلام و غیره. لغزش در کلام و غیر کلام. یقول ان مقابله بله بالاعتذار محبوبته. مقابل انداختن لغزش ها رو به پوزش خیلی خوبه. الاصرار چیه عقد النیت علی البقاء علی الذنب شما نیت خودتون رو استوار کنید بر گناه میشه اصرار یعنی انهو یجب علی المذنب خلاصه منظور جاهزینه که واجب است بر خطاکار انیتو و من ذنبه این که برگرد از خطای خودش و الله لا یسلع و ان لا یسرع و اصرار بر ارتکاب خطا دیگه نداش یه غلطی کردی دیگه ادامه نده خب این مالی نعمه و بهسا اون تعجب بود این مدخوسه قال عبدالله ابن طاهر عبدالله ابن طاهر گفته لام رو که این لامو با کلمه امر که میاد این مبتداست و اون لامم لام لامم این مبتدا سریح در قسم یکی از مواردیه که خبر واجبه الحذف جای که مبتدا در قسم باشه تو مبادی خوندید یعنی لعمروک قسمی به جان تو قسم به عمر تو قسم امر همون عمره ولی تو قسم که به کار میره امر میگن یعنی لعمروک قسمی قسم من به جان تو خب قسم تا اینو نگفت بود قسم نخورده بود به جانش به جان اون آقا وقتی گفت قسم خود گفت به جان تو قسم ما بلا یکتسب یک تصوول ما یک تصو ب عل بنا بلا عقل یعنی بل فقط با عقل نمیشه ثروت به دست آورد به جان تو قسم عقل به تنهایی آورنده ثروت نیست کسب نمی‌شود ثروت فقط با عقل به جان تو قسم اگر اینطور بود همه های عالم همه پولداران آدم بودند که زوج اینطور نیست شما خودتون میدونید اصل عقل فقط کفایت برای به دست آوردن ثروت نمیکنه. ولا بِاکتساب المال یک اکتساب العقل. و به جان تو قسم باز که با به دست آوردن مال نمیشه عقل به دست آورد. اینطور هم نیست که هر کسی که مال دارد مال به دست آورده عقل به دست می رو. نه. عقل یک چیز هر عاقلی ثروتمند نیست. و هر ثروتمندی عاقل نیست اینو قبول کن. نه چیز حالا ما نمیگیم جمع نمیشه گاهی وقات ممکنه یه عاقلی بگید ثروتمندم باشه. گاهی وقات ممکنه یه کسی عقل داشته باشه نه ثروت هست. ولی اینکه هر کسی ثروت دارد پس عقل به دست میاره نه. همچی چیزی نیست ولا به اکتساب المال و اکتساب ممکنه با ثروت بره و قول خودمون مدرک بخره ولی با ثروت باعث عقل داشتن و باسواد شدن نمیشه بلا به ماله الماله یک تصابل عقل این مابل عقل جواب قسمه اون لعم رو کرد قسمی قسم خب معلوم. و قال زرومه زرومه میگه من شعرهای دولت لغوییت از شعرهای اونا و کان بلیغ الکلام لسنا لسن یعنی سخنور خیلی در سخنوری بلاغت داشته و سخنور بوده از من ظریف شعر و حسنهی مالم ما لم یسب احد از شعرهای لطیف و ظریف و زیبا اون مقدار آورده که هیچ کسی بر او صفات نگرفت و هوا احسن اهل الاسلام تشبیبند تشبیبان یعنی غزلن. از جهت غزل سرایی بهترین شوالیه اسلامی است. ولکن نهولم یحسن حسن المدحه ولن هجاء. ولی تو مدح و جایگاهی نداره. زیبا از خود مدح و هجاء در بیاید. توفیع سنت، وفات یافت، سال معتن و سابع اشرت، سال صد و هیده اجریت. خب این هجریت. اون یه ملزومه. نگاه کنید چه میگه لعلن هدارت دمعه یو اقب من الوجده او یشفی شجی یل بلا بلی رو میگه که از عدوات رجاعه فروف مشبهتون مثل برای رجاع این هدار این یعنی سقوط کرد پایین اومد نزل دمع یعنی اشک ها اشک عشق. یعقو یعنی به دنبال بیاورد به دنبال بیاورد راحت یعنی آرامش وجد شدت سوزش شدت سوزش عشقو میگن وجد قرغت طول عشق یشفی یعنی شفا میدهد. شجی از شجاس یعنی حوزن شجی شجیو بوده صفت مشبه است یعنی محزون یعنی حزین بلا بل جمع بلباله بلبال یعنی دلشوره واژش رو معنا کنیم والا به تو دیگه میاد میگه که شاید نه انهدار انهدان الدمع این اشق ها ها دمع یعنی دمعی شاید فروریختن این اشق های من یعقب و راحتن من الوجد به دنبال بیاوند آرامش از این شدت عشق که شاعر میگن در میگن عاشق، شاعران میگن در فراق گریه میکنه. این گریه میگه شاید باعث این بشه که اون شدت عشق من که فشار داره میاره یه مقدار راحت بشه. ها؟ شاید گریه باعث آرامش بشه و آمدن این عشق ها آتشی بشه بر این شدت عشق. او یشفی اَطْمَاس یا آمدن این عشق ها شفا دهد شجیع البلال یعنی محزون این دلشوره ها را که منظور خودشه این کسی که غم دارد و این همه دلشوره به وجودش افتاده این عاشق شاید اصلا شفا بده و او دیگه این همه دلشوره نداشته بود پس گفت امید است که ریختن این عشق ها به دنبال خود بیاورد آرامش از شدت عشق را یوا شفا دهد محزون این همه دلشوره ها را محزون این همه دلشوره ها را نگاه کنید پایین از شجی الحزین شجیف بوده از شجا یعنی حزن و البلابل جم و بلبال و هو و وصفاس و صدر یعنی دلشوره و مراد به شجیل بلابل منظورش از شجیل بالابل یعنی المحزون و لذی صدره حسد رو و یعنی اون غم، آدم غمگینیه که سیناش پر شده از غم و غصه این منظور خودش خب اینم ترجیه بود اما عدات ترجیش لعله حالا نگاه کنه قال آخر شاعر دیگری گفته این ترجیه اما با عصا خاصه بگه ترجیه گای اوقات با لعله گاهی گای اوقات با اصا که اون توی قواعد نوشته بود افعال رجا که من گفتم غلطه بکنید ادوات رجا میگه اصا سائلون امید است سائلی سائلی یعنی کسی که دست راز از ها سائل زو حاجتین که این صفت داره حاجتمند امید است حاجتمندی که درخواست کرده این منعته سؤلند. منعه یعنی محروم کرد دو مفعولی باشه من من به کرد فیه یعنی فلیومه سوالی یعنی خواسته تو قرآن هم داریم اوتیت از سوالکه یا موسا تو بهت دادیم موسا مورد درخواست میگه امید از اونها جتمندی که دستی دراز کرده این منعتهو فلیومه سوالن اگر در امروزی که اومده و از تو چیزی میخواد من کنی محرومش کنی از خواسته اصاسا سائلون زوهاجتن انیکون لهو قد اون سائلون زوهاجتن زوهاجتن صفت سائل سائل اسم اساس این انیکون لهو قد خبر اساس که خبر اساس با ان میاد فعل مزاره با ان اون جمله این منعتهو منالیوم سولن جمله محترز است منعتهو فعل شرطش جزاش به غلینه اساسا سائلون هست شده یعنی ان منعتهو من الیومه یعنی فی الیوم سئلا فعصی سائل ذو ان یکون لهو غد امید است که این آدم حاجتمندی که دست دراز کرده ان یکون لهو غدن برای او فردایی هم باشه یعنی چی یعنی فردایی باشه یعنی اون فردا بشه قدرتمند تو بشی حاجتمند میگه این آدم هاجت که الان اومده دست دراز کرده و ضعیف است و تو منش کنی از خواستش شاید فردایی داشته بود اون موقع تو دست دراز می‌کنی جلوش و تو باید همش با قول اون شاعر الک یا و قد رفعه چه بسا تو مجبور شدی کنی در مقابل او و دهرو قد رفع رو و روزگارونو رو بلند کرد. تعبیرش اساسا الون زواجته تلعچی. حالا بیایید پایین بخونیم دیگه راز. پایین نگاه کنیم معنا رو گفته دیگه من چون معنا کردمون ترکیب هم کردم و عبارات بیان کردم دیگه معنای پایین همینطوری نوشته. لا یلیق وانتم لا حاجتن عطاک و لهو حاجتون. شایسته نیست که منع کنیم محروم کنی سائلی که آمده از پیش تو در حالی که حاجتی داره خواسته داره دارد، واقعیه واقعی این فئن کن منعتهُ في يوم هو اگر او رو محروم کنی در این روزی که الان فعلا تو سواری و منفعت تو است، یکون لهو له البعد چه بسا برای او فردایی باشه و یجازی که عل الهرمان پس اون موقع مقابله میکنه تو رو در مقابل این محرومیتت با محرومیت دیگه. این اون موقع اونم دست رد به سینه دو نگاه کنید مطمئن. اون زلیل ها امثلت تا ثانیه. نگاه کن به مثال های گروه دفع. تجد وسائل الانشا فیها کسیلتون. میبینی که وسایل الانشا توش زیاده. عقد یکون به سياق تعجب گاهی اوقات به سيره تعجبه كما مثال السادس ما احتي و ما احسن او به سياق مدح و زم كما مثال السابع فنعم البديل و بعسله بس او بنقسم كما في مثال الثامن لعمرك يعني یعنی که قسم او بلغت مگما فی مثال است او بلعله و عصا و غیره ما من ادوات رجا یا بلعله و عصا و ادوات رجا کما این مثالین اخیرین ذل مثلا الحا انت ارجای در مثال های دیگه و قد یکون به سیاق عقود گاهی با وصیغه های عقد میشه مثل یکی میگه بعت هاذل کتاب و یکی میگه میگه تو به تو اون یکی میگه اشتره تو و بلی تو های اقود یا سیغه نظر یا ایقاعات گفتند و انواع الانشاق دیر تلبی انواع رشای تیر تلبی لیست من مباحث علم معانی از مباحث علم معانی به حساب نمیاد بحث نمی کنیم همین مقدارم که بحث کردیم خیلی زیاد و لذالکه نقتص رفیه ها الاماز و و به خاطر همین اکتفا میکنیم به همین مقداری که گفتیم و لذالکه نقطس لفیها ها ما ذکر و ما نوتی البحث و بحث و توش بگیر. ادامه نمیدیم چرا چون چرا چون بیش از این مقداری که گفتیم های بلاغی درش نیست چون بیش از این مقدار که گفتیم های بلاغی نداره خود نموزجش خودش یه مطون نظمان هسته فیلی قشنگه این درست دیگه مقامل ما گفتیم والا دیگه بخونیم ببینیم چی میگه میگه نموزش لبیان نو فی کل مثال من امثلت العاطیه. برای نو انشا در هر یک از این مثال هایی که داره میاد میگه لا تسقنی سقا یسقی درست شد لا تسقه لای ناهی است که لامولفیل به جزمی اندار میگه نه تسخیلی ما الملام آب ملامت رو به نوش. من نوشان یعنی من عاشقم تو اومدی هی داری منو ملامت میکنی مثل کسی که میاد داره میمیره هی قاشق قاشق آب میریزن تو حلقش تو داری ملامت رو هی به حلق من میریزی ملامت رو مثل آب تو دهان من میرز نکن این کارو چرا؟ میگه فعیلننی سب بان سب یعنی آشق زیرا من عاشقم. دد استعذب تو ما من عذب یافتم گوارا یافتم آب اشک خودم رو سالها من عاشقم در فراغ معشوق گریه کردم این عشق اومده پایین تا این عشق مردم دیدن فهمیدن من تو دلم چه خبره این عشق اومده پایین رفته تو دهان من من سالها آب ملامت خوردم تو دیگه لزوم نداره بیای ملامت رو مثل آب به حلق ما بریزی ما کشته ی مرده ی لزومی ندارد که تو چنین فعیلننی سببان قدسته از تو این قدسته از تو صفت سببانه تو کتاب مبادی خوندید که اینجا فعل قدسته از تو تا اومده داره با یاما اینو بهش میگن خبر موتعه م? خبر ما میتونست بگه قدسته عذب ماعب ولی اینکه که قدسته تو ماعب این را آورده این صفت سببونه ولی داره مطابقت میکنه با مبتدابش میگن خبر مبتده خب شاید سر لا که لا در واقع نهیست تو انشاه تلبی خب اینو فهمیش. این این ماء الملام قشنگه ها آب ملامت یعنی ملامتی که تشبیه شده به آب تشبیه بلیغه که توی دست یک مخوندی مثل صوبال آفیت یعنی آفیتی که شبیه صوبال مم ما یوسار یوسار رو توی بلاغتی یک گفتیم گفتیم یعنی مم ما یوربا هر چیزهایی که روایت شده عجیبه این اصلا عین متن نهج البلاغه است تو نحجر البلاغه از روایت از امیرالمومنین شده و بزرگان اهل سنت همینو شرح کردن مثل ابن عبدالحسین ولیشون نمیخواد بگه از کلماتی که از امیرالمومنین نقل شده میگه از روایات است خب اهل به که تو نهج البلاغه است چرا که این نصیحت می‌کنه این نصیحت و هونن ما یعنی دوست بدار دوست خودت رو تا حدی هونن ما یعنی یه مقداری آه؟ یعنی با یکی دوست شدی جوری این دوست نشو شیشتون که دیگه تمام عمران زندگیتم بهش بدی و هرچی چی تو. ها کاملا واقف به همه اسرارت، با حبیب خودت محبوب خودت رفتار کن تا حدی که دوستی اختیزار میکنه چرا میگه اصاعنی اون یکون که یومان اون حبیب یعنی محبوب بغیز یعنی مبغوز چه بس ممکنه این که امروز با تو محبوبته فردا بغیز و مبغوزتو بشه مورد تو واقع بشه یا من ما روزی روزی نامعین در روزی از روزگاه دشمن بشه اگر تو همه اسرار زندگیتو به او دادی فردایی که به هم خورد میاد همه رو بخش. چقدر زرگ میکنه؟ فکر اونم بکن احبه حبیبه که خب احبه همره اما اصاعن یکونه ترچیه اون تلبیه این غیر تلبیه. و عبغز باز میگه ابغز بقیه زکر خونن ما اصلا با یکی هم دشمنی کردی با هم زدید مرد باش تا حدی که معقوله به هم بزن دشمنی کن تا حدش با معقوله چرا اصلا یکون حبیبه که یومن چه فردا ممکنه بشه دوست تو بخواد چشش نبا نه که دهنه تو با کن هر هرچی راست و دروغ در موردش بگو ببه رو ببه و خاصی تو چشش نگاه کنی میتونی چه قصیم این هم و از آن یکونه اون تلوی این غیر تلوی درست دیگه ما این مطلب رو هم دیدیم و زیبا بودم ابن زیاد. آقای ابن الزیاد گفته فضل ابن سهلو که از برمکیینه آنه هم بیخوری هم بوده داشته مرد میکده ابن الزیاد. نگه کانه الفضل ابن سهلن وزیرن للمامون این خیلی مجتوند و خیلی نامردی کرد در شهادت امام رزا. و خودش هم به درک واصل شد تو همین رابطه این فضل ابن سهل وزیر معموم بود و قدشته را به بلاوتهی و حسن هی و جمال خلالهی خلال جمع خلط یعنی خصلت و زیبایی خسلت و حسن کتابت و بلاوت و این ساشته و کان یلقب و به زر ریاست این بشه میگفتن زر ریاست این یعنی تو ریاست داره هم ریاست مادی هم ریاست نه, نه و قتله به سرقس سنت معتعی نوستنته در سرخز کشته شد به دست همین کسی که باطل امام رضا بود در سرخز چاکنده بود اما خودش رفتش حالا ببین چی میگه به سهل ابن فض میگه یا ناصرالدین، ای یاور این دین ای یاور اسلام داره ندام کنه دیگه نشای کلبی از رستت هبائل یعنی ریسمان ها رستت یعنی کهنه شده مثل این لباس هایی که تاروپودش ساویده میشه کهنه میشه از رستت از یعنی زمانی که متعلق به ناصره ای یاری کننده ی دین در وقتی که تاروپودش کهنه شده بود تاروپودش از هم پاشیده بود لسا یعنی بلیه پوسید میگه زمانی که تاروکود اسلام پوسیده بود تا اسلام رو یاری کردی نه اینم جواب نداست نه انت اکرم و من آوا و من نصر نسرم, نسرم. قطعا تو انت اکرم نه یعنی قطعا تو لام تحکید لامت به قطعا تو بالاترین کسی هستی که آوا پناه میده و نصر یاری میکنه هر کسی پناه بخواهد و یاری بخواهد اگه به تو برسه به بالاترین کسی رسیده که این کار رو میکنه لعنت اکلامای جمله اکلاما جمله خبری است. اما یا آسر الدین جمله انشایی نداست درست شد؟ اینم هم باید چیزی نداشت نگاه کنید شهار لعومیت ابن عبسلت فی طلب عب حاجت این شرمال عومیت ابن سلت در درخواست حاجت اه. یه چیزی رو خواستن بود حالا این عومیت ابن عبسلت آدم عجیب و غریبیه که از بزرگ جاهلیه دستش جالبه این رو نگاه کنی ببینی بعضی چه قدر قول خودمون پرت بودن شعران به شعرهای جاهلیه به شاعر از شعرها و بزرگان جاهدی قرعه کتب یهود و نصارا کتاب یهود و نصارا رو قبل از اینکه که به پیامبری برسه خونده بود آنها با سوادی بود کتب یهود و نصارا رو خونده بود و کار یومنی نفسه حبت تو کتاب یهود و نصارا دیده بود که اونها گفته بودن پیامبری از عرب محشور میشه و پیامبر آخر زمانه که خود قرآنم میگه مبشرا به رسول یعطی من بعدی اسمو احمد. میگه بشارت میدم حضرت عیسی میگه بعد از خودم به رسولی که میاد و اسمش احمده. درست شد؟ اینو دیده بود تو کتابهای های اونها. بعد کان نفسه نفسهو به خودش دلخوشی میداد آرزو میداد انیکونه النبی المبعوث من العرب که باشد اون پیانبری که قرار مبعوث بشه از عرب او باشه داشت میگفتش که خدا خیلی دلش بخواد منو بکنه پیانبر هم شاعرم هم باسوادم هم کتاب های یهود خوندم هم کتاب های رو خوندم هم, هم جایگاه دارم پس حتما خدا اگه بخواد انتخاب کنه کیا انتخاب میکنه غیر از من که کسی نیست اما خبر نداشت که قرار از خداوند به اسلام رو که هم یتیم است هم بی سواد است ها هم شاعر نیست چون شعر اون زمان مثل سواد بوده مثل دانش و مدرک بوده درست برعکس اون رو انتخاب کرد خدا برای کار خودش اونی که خودش میخواد انتخاب می‌کنه نه اونی که تو میگه این کان یمنی نفسه ان یکون اما خب دید اینطوری شد پیغمبر خدا انتخاب کرد یقین هم داشت پیغمبر پیغمبر خداست ولما ظهر و صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که پیغمبر اسلام ظاهر شد و به پیامبری رسید امکان عن الاسلام حسدان له امتنا کرد از اسلام با اون که اسلام را قبول داشته حاضر شد به جهنم بره قبول اسلام نکنه حسدان له به خاطر عزادتی که به پیغمبر داشت که چرا خدا اون انتخاب کرد علاوه بر شیطان جمال. من با آدم سجده کنم حسدن لن. و فی شعرهی کسی رون من الالفاظ سوریانی گته در شعرش خیلی لغتهای سوریانی هست خب چون کتابهای یهود نصار ها رو خونده بوده تاثیر گرفته و ما اول ظهور اسلام همه اول ظهور اسلام هم از دنیا رفت در صورت که اگه همه اول ظهور اسلام اسلام رو میپذیرفت نه نماز بود خیلی نه به قول خودمون روزه گرفتم بودم خیلی از این حکام نیمده فقط قبول توهید بود و قبول رسالت بود و شهادتین نه حج بود نه جهاد بود ما راحتم میرفت بهشت من قبول نکنیم امان از توان خودم خب ببینید چی میگه میگه از و حاجتی آیا من حاجت خودم رو بگم یعنی بگم چی میخوام یعنی جلوی تو کریم نشده اصلا مثلا جلوی میگن کریم اگه بری بهش بگی که من نیازمندم به من بده، از خجالت میمیره میگه چرا من قبل از این که او دهن باز کنه ندادم که او بیاد از من درخواست کنه لذا عمه ما حاضر نبودن اون کسی که درخواست میکنه و چیزی میخواد رو ببینن از پشت در میدادن یا شبانه میدادن. کریم اینه. میگه از کلو حاجتی آیا من حاجتمو بگم؟ ام یا نه قد کفانی حیاء که می نیاز میکنه من این که تو داری خجالت میکشی که من جلود اومدم و میخوام درده همین که تو داری عرق شرم می ریزی کریمی که چطور من نفهمیدم حاجت اینو برابرده کنم که این باید بیاد با این شخصیت جلوی من بشینه دست درست کنم همقدر کفانی هیا که با خجالت تو کفاید میکنه این نشیمتکل هیا او زیرا خلق و خوی تو هیاه یعنی کرمت ذات توه خلق و خوی تو حیاس یعنی هیای از کسی که اومده داره درخواست تو نمیتونی تحمل کنی ببینی کسی بیاد و ازت درخواست خیلی بخشان گفت از گراه ام همقدر کفانی هیا او و قرارو که ان نشیمتک ان نشیمتک همون کلام طلبی جواب سوال مقدر ان نشیمتک حیا و را شیمه یعنی خلق خو خلق خویتو خیاراست نگاه کنیم از گنواجتی طلبی از نوع استفهام سه چهار تا از این مثال ها رو قصد دارم نگه دارم که هم و خودمون یه مقدار درسم دوره بشه هم یه مقداری بعضی از این احبیات نکات صرفی و نهی و بلاغی و موارد مختلفی داره ببینید من دارن یه دور متون نظر و نصر نمیدونم چیزای دیگه هم میگم یعنی این خارج از مواحظ اصلیست که به شما کمک بکنه و بتونید استفاده کامل ببرید لذا از تمرین پنجم میذارم بماند انشاءالله برای جلسه بعدمون خوب مطالعه میکنید تا جلسه بعد که در خدمت شغا باشیم به شرط حیات انشالله موفق و معید و پیروز باشید در پناه خداوند متعال و السلام علیکم و رحمت الله و برکات